دل و شد و دلبر به ملامت برخواست گفت با ما منشین که از تو سلامت برخواست که شنیدی که در این بعض دمی خوش بنشست که نه در آخر صحبت به ندامت برخواست شم اگر زند لب خندان به زبان لافی زد پیش اشاق تو شبها به قرامت برخواست در چمن باد بحاریز کنار گل و سرو به هواداری آن آرز و قامت برخواست من است بگذشتی و از خلوتیان ملکوت به تماشای تو آشوب قیامت برخواست پیش رفتار تو پابر نگرفت از خجلت سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخواست حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری کاوتش از خرقه سالوس و کرامت برخواه